و در این که بعد از این که باید به بحث حجید خبر باشیم آشناهیه با این محیط علمی که در دنیای اسلام نمونجن دنیا شد به این طرح مساده را به حجید خبر مطالب رو باید در نظر گرفت همد از اون در بحث اون خلاصه مطالب رو از بکنیم یکی وجود مقدار آیات که شاهد بود بر این که مثلا مسلمان ها در نورون یاد یادی هم یادیدن زایی نحر یا را که به نوره فاصل اونجا هم راسم روایات بود از برناله هم که در تایید حفظ حدیث و رادیو اللهم ارحم خوادقالی قیده لمن هم و میعنی سلوه را لبین یکتون سنت من را روایت از کردم در این بار عدده از, از ها بباییات اینه و من از از قلم های کتابهایی برسند در شرف و اصحابه حدیز اسمشه این شرب و اصحابه و این مطلب رو از خرم از اوخه قرم دو رو به شدت مطرح شد و خلاصهشی بود این طریقه دیگری از بباییات بود که فیلمان برک خبر دادن که در امت من در هم قرمی در تبریه افلاقی هستند که تحریف ها رو رد میکنند تحریف عادی یعن که مرد تحریف عادی و مبترین وقت روها همون بودن ما هستی مثلا روبات و مهندسی میبودن ما هستی یا مثلا فضاق طالفتون من امت منصوبین از اخبار اخوانیان بودن که منصوبت حق ما هستی روبات عبادیست هر از یک تایده هم اینجوری بود یه تایده هم از کردیم چند بوز این صحبت ها نایده شما هست یک تایده هم بود که تشکیل بود به ارتسانی که امکان بود باده حدیث و. که مشروطه شما حدیث عریکه و حمز عریکه تقریبا از یک تخطیقاتی که میزه ارتسان میشون یا دار بخصایی میدونن که دخته و زنگور اینها شما فیغنبت آنهایی که یک ما بعد که من در شما رو که بسیم تخت نصفه کرد نشسته باشه و بعد به رو که فیغنبت هم برکم این در کتاب الله نیست فسان یعنی تشدید بعد نفی حدیث نفی حدیث از در خب اینا مجبوعه این بود که گذشت توفیه ها در مقابل این جهدیه هم مصنم شد که این شریعت مقدسه تحلیفیز از قرآن و سنت کتاب و سنت و داری احکام کتاب رو تحدیل به فرارز می کردن اونا هم به سنت این نکته اساسی بود نقطه احساسی به شریعت سنت النبی نبی به منظله نقطه قرآن بود. ما در ببایاتون در, در بایات صحیحه از خوضه این نیاسار نمجید برای اسلام یا این از این اما خوضه این نیاسار برچه ایمام میفرمند که خدا در فرمون داد و فهمن بر دور اتصاف شده در محرم و این برای فسارت سنت و عدید و فریزه ای از فسارت و عدید و سنن خیلی برد در دوشت که فرازه اعلاقی هم خب هم که توضیحاتش کذاشت و صحبتش هم اون قسمت در اساسی و کار هم سنن بود یکی خود خودشم در و نوشتن باران که یکی کردن که این در حضر توضیحات شهر سنجد روی میکنی از خیلی ادعا میکنن اهل سنبت ادعا شنید که وقتی خواستن قرآن مصحف رو اصمان جمعه ولی ببنی مرحبا کرد اگر که هم در حالی که با شد که یا نفر باید شهادت دیده او در بار باران دو نفر به هر حال خلا سه حت و صحب مقداری ها و حسیل شوهر شده اینا و اختلاف رو به آتی کنیم از اون چون الان تو زیمان نشو مراجعه جرمان تریمان تاریخ جمع قرآن در چه سالیه حدود این سال باز یعنی حضور 20 سال بعد از بکنه به اکرم کرد خب این مثلا تمام شد در بار تقییمت احمدت دو تعیید کردن دو زبا ترمی رو رو بودی تعیید شد این مخلا تمام شد تمام چه مسئله این سنت سوند چون شد قرآن نسوند این مشکل این بود سنت هم در در حساب قبل توضیح داریم در زمان عمر بنا شد انجام روم که سنت رو تغییر بکنیم سنت رو برو جمعایی که گفتیم عمر رو مشنا یا مسنا که مسنا اخیر کتاب تو بیرش بوده گفتی مشنا نظر ابریز و مسنا هر فارسی تحلیم شده شده اون ابری و به فارسی ما فعلا میدیم علم و سننا جمعیم برای از این سندشو گفت در دنیای یهودیه که طور اینا مشنا و شهرش با عنوان بران احکام و اسمشم علم و یا مکررات فقرام ها میدیم علم و مکررات یه. یعنی به اصلا دنگاه رای در طور احکام متفرف بود با یه که ایجا جم شیش باب داره نشنا و احنام کاماره که تو قیده اینجا به اسطلاح ذکر عمم بگوه اگر ما سنن را جمع بکنیم مثل علم و سننه های طوران فکیم طوران میشیم این کاریه بعد کردیم بعد زمان عمم در این سه سال امیر مومی صحبت سنن هست و کتابیم بگه سال سی و تا سال چهیم اما که شما کوفه یه وقتی استصلایی داشته و شیعه داشته و اما و هم حال این کتاب یک بر اثر هم جریانات مختلفی میقاره شبه ناکرانی یعنی الان خیلی منظوبه به مجموعه برمیر اما با این هم جلیست و از هرگی در سال سای سه اولین بار اولی ما دیگر اصلا به جهت تنبیه نسانه آماره نبدالعزیز قدوده اصلا سالهای 20 بوده شاید یا کمتر از 20 بوده این ماهتن نشد سی و هفت تا چه بوده کتابی جمعهری شد، که نصفی کتاب بوده اوها اوها زیاد بود امر این از عبدالعزی مدینه و از کریمه شد بعد از امر با مجموعه اوراق و نامه‌ها و از طاقه ای که بود و شد رو سنده په که با خورت امارد نامی عزیز این پسند وید شد بعد از مرگ خوشکدان امارد, امارد نمجر که این پسند نامشه طبیبا کتاب رسمی که سنند رو جمع کرده باشه به اضافه ایش ما درده ندینه در سال سال پنجی های که رستن دیگه سانده اول مزهده که بعد آنهادت از همین سال پادر نامی بود خبر که خود هم خبر برده که معرفت کردیم خب بعدی زیاد شد کتاب ها ادامه شده حدیث خود موزده این معرفت مقصد و بعد از که این میان احمد یک ممیون حدیث بود. شون رسال رسال سال و ازار حدیث چینده بود شما ریسا سال به رسال صلو تا ساله 200 یک که خادر احمد رو به کجا اوزاق حریص و نوشتن این بود این مجموعه مطالب رو در نظر بگیریم وقت، وقتی که بحث رو خبر شروع شد چون یه نبود پس نوته اساسی چی شد نوته اساسی این شد که اینها ها این فرقه فرقه ما همچنان که کلام الله بزند کردیم که قرآن باشه باید سنت پیغمبر هم جمع این اهتمامی که بحث هجیت خبر وارد داشت کارهایی که علماء ب خبر اون در حقیقت نکته اساسیش این بود ون خبر وارد منش این رکن دوم شریعت بود که سنت <تصفح> بود این اقوار که بعد اهل سنت یا بهطبق نها به یک معنایی در مقابل آنها اهل شیعه گرفتند این تحلیل علمی دقیق ینه اینا م گفتن خوب نموشه ما سنت کنار بذارید البته بودن الان هم شیدن در اتا که غیر از کفاقی هیچ مراجعه نمید به عمل بسی احریسته رو خبر که تختش رو میشن یا قبول نمیدونه آره تو سایت ها بودید تخت تو سایت رو از درده بیراترش میخوایید ما قیلات قرآن در رو حضا به استثناء این فرد شازه هر که در دنیای اسلام مطرح بود راه وصول به سنت بود این احوالی که پیدا شد نمتش این بود یعنی حدیث آمد یک دقاست دیگری پیدا کرد اونان به خاطر این که حافظ سنت راهی برای سنت یاد حدیث نزنید. هنه آم در ذهنیت ما ها, در قوضه های ما حدیث رو طریق سه روش میدونیم یه من فرم یاد یه خبر به شما میدونم تا سهی بیسی ما میدونم هم بسته یکی ما میدونم شما برای حدیث برای خبر بیشدید ازش باید نیستیم حفظ میکنه انسان هستی نیستیم واقعیتش این که در دنیای اسلام اینطور نیست ولی ازا معروف هم این شد که در احکام و در سنه ما خبر خبرواهید را قبول می اما تو موضوعات خارجی قبول نمیکن. این که مثلا این کتاب میکن آغاز باید دو ندر باشه یه قبر قبول نمی یعنی <تصفيق> شما می در مثل موضوعات خارجی گفتن تعداد که صدقان بگیه نمی اما در بابه خبر باید خبر را قبول می کنم باید تحصیل که باید به عکس باشه باید تو سنت تشدید بیشتر باشه ما حال خوبی هم تحملش حجره قرار به خاطر سری او مثلا سیور مدار فرزين احكام و بین مسائل موضوعات نمیذاریشون خبر استغره رو بجرد در احکام چه در موضوع میفهمم این نکته کار کجا چطور شده که مثلا علما اونطور گفتن یا از اونگی چه حاوی این نکته خبر احکام یا شوش اژوش بحث کردن مرتبط شد با سنت سنت هم بوده دوباره شبیه البته یه اختلافی در باقی حقیقت سنت بود اساس اختلاف این بود آیا سنت هم بیان خداست اصلا سنن پیغنبر به تربیر رد شما تو همین قرآن هم هست میکنی پیغنبر میپرمه ما نمیپرمه مثلا که نماز دو تا باشه نماز رو چهار تو خود هست اینا این یعنی از گاهی رو میگن هدف یعنی اساسی از پیغمبر یکیشم بیان سنن بود اینا از ذر مانهله توی توبنگیه نه توبنگیه نه یکی از ذر بیان مانه بود به این در در ما سنن نوی جعل به من داره این که جعل رو گفته روايات زیاد ترین اخرشم شمار آورده در کتاب مصاحب درجات که اصلی این جهات دو طبقه قرار داده کی تفیز لعنوی هستن تفیز ال عین در کافی هر دو باب تفیز کرده و تقریبا موارد جوابین شده بعض تفیز و لعن هر دو یک باب کرده کافی در خلاصه اینه که این کار در به امره من الله به جهر من الله یعنی از مصطفا در اینه در شب وحنس به کرد. اکرم باوند مطابق این ذاتی رو که شب تمام موجودات بود غیر از این حال حالا مزاد اشتبه قابلیت های بسیار فوقاته داشته اشتبه موجودات بود این روی جوری در آزاد که تمام هماره رو به در اصلا برای سمازیم آمکنه بیشتگاه نه باید باید آنسان موجوده قرار بزن که بیشتون انواد یه در دور نزید یه شکل در نفس به هم برکن در شد, شد که تمام همه را همه رو ند که 124 هزار به بر بردن همه رو این یک دو تمام مساله مردم رو خاروز در هر قطعی زمین و در هر قطعی زمان اون رو هم ببینید در که تمام این مسالح رو خداوند در نفس پیناده متجدی نفس و در لذا همقدی شد و دومی شد سندند چون پیغمبر تمام مسالح رو دیده بودند طبق این مسالح سنند پس سنند جعل رسول الله را که به تصرف الاهی و عرض تکریمی الاهی این نقص مخدسه این نقص مبارکه در اون لحظه مبعض این دو قابلیت رو پیدا کرد یکی در که تمام اون چیه حقاید نیست که از قدرت بشهر دوم در در دیدن تمام مصاده انسانی و مخاصد جامعه انسانی فاروز ری آمد این رو همه خدا را می پینامبر نشاند و پینامبر تقریی جهر پردن این جهر رسولا سوند و همطور که از سهل در روایت سریعی کزه آمدن پسارت سندن سا عربیلت پریزه این نقطه این بود که حالا این سنن که کار رسول تو بگیره و نوزه هیچ این چیجور اونی که علمای اسلام روش آمدن کردن وقت سرده قطع خارج شد گفتن الان تنها راهی که ما داریم برای سنن همی خبر این همه روی خبر بحث شد شون فقط بحث خبر, خبر, دو بس دو خبر نه بود ما زمینیت این بحث خبر خیلی عادیه این نیست در اسلام در تاریخ اسلام این نشد در تاریخ اسلام خبر معادل شد با سنت سنت هم که سلب شریعت از سلب شریعت اگر دن آبود راجع به خبر تصور تصور تصوری بشه که قبول روی نتونه یه سنت, هم سنت, هم سنت. چوری نبهید رکھتا لذا طلب من عرض کنم تصرف کارهایی که علمای اسلام به دادن غیر فراتر از حجیت کاش بر حجیت مثلا اذه از, از علمای اسلام قرار داشته یکی اون افراد مشهور مثل کرابیش اینها و داوود نحوی اسلامی یا این چه مكتبه ظاهر الهایی اهل سنت مثل اخباری ماست و خود ابن هرز در اوائل جدرول در احکام چندین سطح میشهرم چنده ای گفت چنده جنبه خطابی و منبری بیداریم چندین سطح اصرا که ما احتیاج به شریعت به داریم و شریعت سنت جز به شریعت و این هم به از خبر نیست و لذا مثلا ایشون میگه نه نحن نزد در نزده اینا نحن, نحن حافظه میگن مراده از قرآن میسونه به هم خدا بعد داده هم قرآن و حفظه هم شنده اصلا اونگه نه نه نه نه نه نه زد زد خصوص کپاب نیست که تو زهن ما هست شنده هم هست و که ها به ابنه به اصطلاح و از ها که ما عطع خبر داریم بحث زن نیست و علاقه اینطوری خبر سقه انسقه ان رسول الله آوره به این حقه بحثه. بعد یه بالاتر میگه اصلا این واقعه حتی اعتراض میکنه میگه اینطور باشه پس برای بگه اینا معصوم هم بگه بله بالین معصوم هم پس بگه خدای داره معصوم هم بله خدای داره کارتون کیشده با خداها قبر سله هم سله هم, هم. سلن، سلن. پس بیر من دیدم خوب تولادی من چند سطح محسن بگیم به این نتیجه رسیده که خبر واقع به این خبر سره، انسره عنو رسول الله تو ایمان هم این اصلا محبود آیه ببارکه و ایمان همین اخبار در نزره شما در کتاب احلسان میدونین احلسانت هم از های مجبود و خیلی مقید محروف و که جای خودش باز و چیز مثل اومن گفت بعد اونجا بود تو اونجا توی یک کسی های این مسئله از پیمندر رو بسید پیمندر این توش آمد که مثلا که ایتون همه رو عمل امول یعنی و تمام داخل در ها نحن از زن با اون عرض عریضی که کی ها صحنت هستن و این روات محصوم و این امتحن ای از به کار حرف در روایات عامه شبیه اون حرف بود که باید عروب سال وصای در روحات خود خودو خود بود او اون تونه سال وصای اون کیهان تا خدامند نسبت به خدا داخل حجیت خلق رو میبره با اثرات که خدا فرستاده میشه چون در بابتی اجماع نوع انسان دنیا در ان لا خدا حفظ میکنه امت رو اونجا هم ایشون همین رو میگه میگه خدا حفظ کرده و این روزو سنت وقتاً خوب جده وقتاً ثابته یعنی به عبادت مخرام ما که انما وزیفمون که با از سنته سنت هم همین روایات همین اخبار آهاده به قطعه این چیم از سنته؟ از این عرض علیز بگیرین در میان احضی سنت که خبر سرن سرن رسول الله رو کبه این سنت و خداورد رو حیث کرده اصلا آمالله و قطعی هم هست و یقیناور هم هست یقینا هجته قطعا هجته و قطعا صدق، و اگر این دین از می میره حفظ دین به همین هست از اینا بگیریم تا اون آخری که بختم میگه اصلا ما به همه همه همه این ارزه عریض ما بین اما ما در اصناع صحبت ها یکی از صحبت هایی که کردیم بود که بعضا میگه اصلا یه انقلابی در تقریف راقش شده تکریف ما عمل به بود اما حالا تکریف ما عمل به این ربایی هسته اگرم نه بود کرد این همونسته حرف ابن هرزم درده زدیفت هسته یعنی اون نقطه تنمی برای روشن شد اینا در حقیقت با یه مشکلی رو بودن اون مشکلی بود که مشکل سنت دو در ما اگر در خورت تنها تو چی تایی تسامهی بخواهی چی سنت از دو در شریعته نصف شریعت مخواه. لذاره این مثل ابن هرز میگه خطیقیه مثل اون آقا میگه نه آقا اصلا این وقتی بر زیبون عوض شده انقلاب وزیفه شده انقلاب تحکیق ما باید عمل میکنیم به احکام حالا بالا عمل میگه به خطیقیم چقدر خبر رو برد بالا؟ بر پس این نقطه رو در ذهنس رو نگه بذاری در مقابلش ازدیاه گفتن نه آقا از مثل مثل از این ظنی مثلا مثل هم ترکی میکنم اوولای ما چ میر خبری آمدار رو برخ از مساج باور که امشااء و خوب داشتیم خلاه عراست داشت این تصویبی که در باب خ بیشتر تصویب اونا در باب شاد می نه در باب روایند اما در باب روات هم می دارد. این تصیب معرویم در باب شاد و نه در روشن نفته اگر دیم راوی آمد خصفه دنس به حتی مطابقه با علاقه بگیه این شاه رو بگاهی میگه که نقطه اصل نقطه چی بوده؟ بیایم باز پایینتر کسایی که باهی بودن نه وقت نه مقابل این تیف تندی که بود تازه متعارض اهل سنت که الان بزرگانشون هستند به چهار ماده اون داده شده نه بحث عمومی و بحث او این هر جایی دستوجیهه اونم به تا دو اما این اخباری که هم همسنگ رسول نه نازله حجت برای حزب سنت مجبور اینو مراجعه کنه هلکه بعد درده که از آیه نور دیگر آن یا مثلا همهر خود به منبر اکنه کاره که اینا رو با همهر جمع کردن که مثلا بگید که خبر باید حجیت این ستاره یه اولیه رو اما این محلت که اصل حجیت این دیگه تقریبا اگه انا رو مثلا ما دو سه درصد آمود بدونیم کسیم که اصلا خبر قبول نمی کن درصد بدونیم در دنیا هستان. اینا بالای درمدر درسته شدیدن میگن طرح نیست ثبوت نیست انقلاب نصفت نیست امشاء بخم الاسرون خبرم نیست اما حجت است لای رفید الال لیکن یونجه برحمه حجت هست و از این باستون میرن میگن اصلا قسم بردم حجت من نگاهی هم در این خراجی اگر بحث به هم باشه چیزی که شو خراجی آرایشی در این محسوبو در اونطوری که که خبر وارد اونجا نیست میگه یعنی چی شو خبر چون تو ذهن اینها خبر این سنت راه دیگه نداری اگر مثلا به اینها شما بشی که این در اینجا اوضاع به اندریدین درسته به بارت عوامی و فاسی اخیر دیگه قرار او که دهتره ای که این ای مشکل ای بود مشکل او درست کرد شما برای همده مشکل آنه هرهای پادرهای بتر نمیزن که اون بیهیم تفقایت ما یهود نشید یهود در مسنده های ما و نفریز و میشه خب عملاً اون کاریش که مخازیشون با الله خودش تأثیر دیاره داشت مخواست پیاده کنه عملا توی مذاهب اسلامی هر یه هر تپلی رو مطرح میکنه. اصلا سرعت وانس رفیق نه خدا مخصوص هر خیلی میخوای بیت کرده توی میخوای اینو خدا قرار داده. انقلاب نه ما از بیچیده اخبار مطلع برای برگریم به خبر عمل بکنه. یا از قبل امشب اگر خبر متفاوت باشه یه خبری بین خبر هامون به نمون خبر هر اون خبرها اینطور احکام واقعی میشه. خب یکی خیلی نامعقوله خب خود مولا مصطفی میوشه میگه هر تو کار کوی هر تو فلرین بی رو گفتن. لزوم که تکفرمایید در میان اهل سنت این عقلتون در نظر بدهش می کنه, کنه این اروا بود از دسته که جنبه اخلاقی عقلانی داشتند. نه این میانه شبوت داره. نه خودجیه که به معنا داره با آیات خب با اون شواهد مراجعه کنیم به آیات باران به تلقیه به مصابینات به شواهد حدیث به اصلش به باقیش رایش چیه یه صحابیه محروفیه یه صحابیه غیب محروفیه خب به اون شواهد خبری که از شواهد اغلاویستون شواهد پیدا بکنیم به خبر اسمیان پیدا بکنیم اینا بقیه محضره. بقیه محضره محضره. این هم به یه محتضره پس یه محتضر محروف شده پس بگیریم. تا اون حجیت که که رأی معروف آموز، در کتاب‌های هست به مزارع بر ونسرن نمایان می‌شود، نه نسلی غارده، ازش شاید که در اصل خو جیت خبر است، همه چی معتبره، ابو حنیفی به خبر موسی الله و السلام نمیکنه. می‌مونه این این در اصل خبر است، چهار که اسمیل کیچ از اهم با این مطلب. اون نه اون حرفهای اول قبول کردن، نه حرف محتضله رو قبولی کردن نه حرف اکسایی خبر اصلا خود گفت نیست همه رو دفعه برای این رو هم قبول نکردن این مجموعه صحنه ای بود که برای شما تصویر که در مجموعه آرا در پس شد شده تأکیدش با خبر واقعی این همه رو کردن این همه رو هم کردن چون اینا تحمیده بودند با اجواه هم میشه سنت و تحمید. یا با قول خودشون با قیاس هم میشه حکمون داردن؟ اما هیچ کدومشون کارایشون به اندازه خبر نیست. میاد فهرازی بگه تو سید محفظو که ممکنه بود سید خبر خب معنی که دین از بین بره. چون سنت که روحی نه اساسی دینه توسط خبره. اگه از بین را چی نمونه؟ تصور زنی شوی نمونه. اما چیه؟ پس من چند بان ارز کردم که بعض از علمان مایه همونز هستن یه بحثی رو که از سنت بستر میکنن میان از همون تلقیه که اونا مطرح کردن میان در کتاب کتاب اصولی یا فقیه ما مثل. من کدان هستم زوایای بحث پیش شیعه کلا با زبایه بحث پیش سنیه ها فهم میکنه فرق فهم میکنه این مسئله که تأکیب رو سنت و با باید سنت تلقیه این قطعیه یه چطور نمیشه این اختلاف سریعی بود شیعه میگفت چون سنت بکنه اساسی شریعته متکفل هم باید خدا باشه مثل اینکه که کتاب رو خدا برسته خود سنت هم باید خدا تعیین بکنه و تنینیم کرده میتوانه کن شما خط و اشتباه رفت اون تحکیدات به شما روی سنت دروس این جبت نداره که اما الان ما بیاری مجبوهه سنت یکیش از باور آمده یکیش از، با اینکه چند تا صحابی، یکیش مثل عربی مخدوج، یکیش یک زن، داره که وقتی که تو ظاهر دارید از که مهم اینه که سکنتواش در سویه سلام الله علیه ظاهرش اینه که زن مطلقه در ایام طلاق حتی شوهنا داره با اینکه خونه شوهر باشه، شوهر جو که تعیین بکنه این فاکتور به رسم معروف شوهر استراق طلاق باین با داده بود پیغمبر گفتن تا حد سلطان نداره این وقتی در زمان صحابه منظر شد من شد که این گفت از عمر هم کنم نمی بود بی خود ببیشتی ما همچه قبول نمی اینزن ما در احکام الهی هر <تصرف> یک ایزن قبول نمی بود آزی تصالات ابنه هر همین حرف زنی که بقبول هر با قبر یکی آیشیه که اومد این دو روز مقالف کنه اجتهاد الله در صورتی زمانی بوده آشیونه یکمی یک زنه در زبان روز سلیقه رو به علاوه یکمی یک زبوده تذکیه به اپارکوسون شهبیه گونهواره است و درگاهواره است با فامیل جوارش میتا قضای داخلی و زمانی گویا من یک حکم الهی رو که ظاهرش هستن ظاهر نغرد اما همه که ما نمی‌تونیم در یعنی مثلا از که موانده تخصیص بخورو آن تو برد در برسه مورد طلاق با نیست طلاق رژیت عمر مرمی شد مطلق طلاق رو فرمیده اگر راست باشیم نه. ببینیم؟ من از مثل ابن هر با هم فتایی فقاشه هم ایمه ما. ایمه ایمه ایمه ایمه هم اسم فاطله دینتغیش تو ما نرسته نکردن به حدیث این زن که یا برزوان بوده آیشه کنید برزوان بوده فانده شوهرش عذیت میشه رو حالا میکنید اصلا نمیخواد توی یه زنانگی باید نمیشه با دروای زنانگی درست خب این بشکت که در حقیقت شما دارین آمد این سنت متقرره از جاهای متفرقه اعرابی که مجهول اندن که مجهوله اصلا من این صحابی وجود داره وجود نداره از این طرف این روی نه صحابی بوده و روی نه یعنی نه ها در حقیقت اونی که شیامد بود شما اصل دسته رو در اصل انکار بصیر قدیر اصلا خط رو اشتباه شبافتید لذا مجهول میشه دین لاسالسی خب این مطلب که سنت حقیقت داره پسارت سنت و عدیل از مریضه این بزن این دینه نمیشه شریعت محدثه رو با قریضه تمام هم که با سنت باشه اینجا رو نداره لیکن این مطلب هم اینجور نیست که شما با ذهن خودتون و با وجه خبر و با این حقه رو نمیشه یا معصوم کرده سمنه پیغمبرو شد سنت چون اساس شریعته و راشنای همدا مهزن اینها روز قیامت است اینکه حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلالم بیشتر ناظر به همین سنت این سر نبای سنت سیه حلال محمد علیه و قیامت این که داره تا الیوم قیامت این به خاطر این اینطور نیست که ما مثلا بیام بگیم کار بکنیم می دونند هند بایه ایام احمد صلی الله نکن که درسته راست این همه شیعه اسران تقییم به مسئله رلایت و رسایت دید. خب سرش هم این بود سرش این بود که نگم از مصنع قرآن بنیبسیم که شبیه یعنی بشیم نگم این حرفایی هوار رو زنیم این ملاقه تکلیف بشه امزان تصویب قاهل بشیم نمیدونم خود جیهت قطعیه قاهل بشیم این از این حرفایی نومد ما چون اعتقال داریم این ترکیبی که شده در روایی در بابو سنن برمیگرده به خدا برسول به ما برمیگرده خود بر برمیگرده این وضیبه این نیست از چهات و متفرقات از این بر از اون بر گاهی میشه حادثه اجتماعی پس و هم استفاد میگفته پس و یه یک فقط به خواننده است. استیچریش میشه دلیه متفکران شده. این مثلا در اینجا نیست. موضوعات این خاطر، یه مجموعه خاطرات و روزنامه‌ها مختلف جمع که روزان درست درستی نه. ما هر کمون اینه که چون این شریعت خیالت خاتمه است، خاتمیت این شریعتی اختصار می‌کنه تمام اصول کلیش مدرن و باشه. این جمله که از این حرفای درست بود. و عملا در قران بودید ایوب احمد سركم دینكم است فتمام ولخت رسالته است در دراقت اشتباهی که اصلا حدیث غریب رو کردن و لو از اعاده از اهل سنت تکيف کرده. اما مسلمن بزرگان حدیث اهل سنت ابن شامی تقریبا ناجی حساب میشه حساب تفسیر و تاریخ هم بره. تو تاریخ چند تا سنن میره یک مناقشه میکنه نه این البانی, ماشه. البانی. که از معاصرین باشه محمد که از سلسطه را حدیث داره و خب یه محدث بزرگ و خیلی اصلا و سلفی ها تأکید میکنن این کنم حدیث حدیث بگه سمینه الان خرده دارش اینه حمله میکنه به امن فیمیه من تحصیل با شیخ حلستان چون حدیث چرا حدیث قدید رو تصدیب کردید؟ شما تصور مطلب رو بکنید همیتار دنبی کن و سبل انتظار الله و عزیز حرفشن نگوش شیعه در حرفش بود. حرفشن و نظام به جای این حرفای شما این به یک زن و یک عرابی و ایلا مرتقب که و المومدین رسول الله سلام و ماست و ایشان سنب رو به حسن وش حفظ کردن. به این سنن پرسته دعیمه رسیده لذا در بحث سنن اصلا بحث خبر واحد مطرحی که ما این توجیهات رو بگیم در قرص رو بگیم در بحث سنن بحث کلامی مطرحی اسم دعیمه مطرحی نه بحث حجیب خبر واحد که شما از این را بید چون این مطرحی ما الان خبری که داریم طریق از دعیمه دعیمه برم یه دستان مطرحی اوشانی خیلی مخواه بی لذاب هر حرفایی پت و پرای احسانت قالبا در علمهای با نیامن چون نه یه مدن دل مستقی در سودان آزدن این یعنی گفتم پس که امام فرمزوشار حالا باید سنت رسلا باشه و برای فایی خوشه باید برگردیم به امام علیه و اون چی بیدیم سرچی اینه که در علماء ما مثل از همار خویی اگر دفت کنید مثلا یه خبر اگر همچه هستی به امام حالا به احکام و غیر احکام ندارد این کلمه احکام در عبارت ایشون غیر از احکام در رو اهل سنت در عبارت احرستان احکامی هم رسول الله سنن در عبارت ما یعنی کلام ما مصادر دقیقه نیشی شد فهمت دسته یعنی و نظام این مطالب رو مثلا اینها قطعیست معصوم نه اما قطعی بودن چرا اخباری های ما گفتن یکی از اشتادات احساسی هم که ما کلاما به اخباری های کلمه این بود که شما اگر موجیهت ما از اینه مرمول بود اما قطعییت نیش ما از پس بحثاییده پس دقت بکنید من مبانی اهل سنت رو توضیح خدمت شما، شیعه. مبانی شیعه مسئله سنن و حفظ سنت یک وصایته با خبر وارد و زید و ابن بکری است. میگونه مسئله خبر واجبه، خبر وارد اصول ما به کلمات اهل نه به سنت. سنت پیش اهل بیت. که ما در این به کلام امام صادق چرایی انجام میدین؟ یک آقای خویی و احناسا به آقای نگاه و داریم در کل خبر اخصاص به اخری بحلیبت ممکن که خبر رو به قیاس راوی نگاه می کنم به دسته حدش خبر به لذار فرمان بین احکام موضوعات و تاریخ و لغت رو چی در بزرم دقیقا دو راه که یکی میگفتن نه این طریق غلابی کافی نیست اولا خیلی اما از این غلابی نداری این یک دو هم برقرداشه کافی نیست ما یک خصائص مذهب داریم اون به ساقت بد نیست اما یک خصائصی داریم خصوصی تو این مذهب چون بر اصلا تقیی و وفش خارجی یک خصائصی داریم یک چیزهای داخل از یک شواهی در داخل از هست از خیلی قومی ها غالباً قالبیین بودن دقیقه میکنی و از خیلیناً بزرگانی از قبیل مرمون نایمی و آزیو بزرگان محاصر ما بزرگان خیلی از نصال خویی و, و بزر... از خیلی این صورت محررش اطلاع مرمون محقق داره محققه جلی تقریبا مده این طریقه هست یکه هر خبری که روشن باشه و شاز نباشه و بین اصحاب قبول شده خیلی قبول میک کسی که اولین با این مبنه رو بینی رو داره نوحط داره النامه بیشتر دنبال خبر صحیحه شبیه مبنه رو خوبی فرد این مبنه دو مبنه سه با پس یک مبنه برگردیم به سریع و حالا. یک مبنه برگردیم به شریع یک مبنه دیگر اخباری داشتند داشتن که ما برگردیم به شیعه لیکن اثبات افعیت می کردن این مبنه خیلی قبول نشد مبنای شهار و سید مرتضا بود که ما برگردیم به شیعه و راه برگشته به شیعه تلقیه برگردیم شیعه هست نه خود رقایم ما به جنبال حکم نرقایم پس با این بیان من هم روشن شد رو. اینی که فخرازی یه سید مرتضا عجیبه میگه خبروار بود جمعه عجیب نداره اولا سید مرتضا میگه بحث سنت رو باید از احرق گیره نه از که شما گرفتیم این یک دو راه رسول به اطفعت هم پوهایش هم علمه هم هم تردیه خیلی لطیقه. و واقعا کار سنگی میان انصافا در بغدای در اون زمان که در در تمام که در کتر تمام بیانگاه اسلام و جد در اسلام چون شهید مرتضى صدرا دقیقاً بدید. چی می‌خواد بگه؟ سر نمازون با بیان بیو بیارم، می‌خواد اینو بگه. ما اصلا راه شما رو کُلن نرفشیم. ما رفتیم از راه اعرا و راه وصول به اعرا تلقی به قبول بنشیه. لذا اگر این ازاوین نگاه کنید ابوالقاسم صدرا نمای جدیدی. ایشون در هر مسئله یک دین دلیل و حاله اجماع الموسکر رو یاده که حافظی ها میگه میگه ببقید نگمنا که اجماع طارقه و قول امام محصومه متزدین قول خیلی عزیزه برداد که مثلا امامات قبول بود نداشن ایشون میگه خون روشنگی چیم خون بگه؟ میگه دلیل ما در احکام در این اجماع شیعه اجماع نتیجه چی میشه نفیجه چی میشه که اگر ما واردی این مسئله میشیم از ظاویه اسمت وارد شدیم و رسایت نه از ظاویه خبر واحد خالی میمیست که هست یا نه قواهد علم رجال فیاده بکنیم اصلا جای بخصه قواهد علم رجال نیست پس تنابراین مراد این ظاویه جدیسانه این ظاویه جدید در حقیقت که ما در تحکان برمیگردیم به رسای و اسمت همه و راه وصول ما باز هم خبرهای خودشی هم نید تلقیه به قبولشی همون که بکنید قومی ها میگفتن و همین خبرهای چی ما شیه قبول شده همین خبرهای چیز هست و حصال مخبوب همین خبرهای رو پس بنابرای. تصور کلی مسئله و تحقیل کلی مسئله در پیش اهل سنت روشند شد پیش اهل سنت شیعن روشند تو که ما اصلا یک اختلاف کلی داریم نتیجه من مبدعیه و به حضر سنت رسول الله راهش دو تاز و مجیوعه راه های که علم های ما رفتن برای اینکه کلام اهل بیت رو در بیارن یک رایی که امثال آقای کوی رفتن رساقت راوی دو رای که الله از سال علامه سال مدارک رفتن سه حت سنن یعنی راوی سقه و امامی باشه و عادل باشه سه تلقیه به قبول بین طاعته که مثل منون شکنساری و بزرگانی که هستن غالبا که اصلا منشه اشت هم مرحوم اصلی این مطلب چهار هیچ کدوم از این سران به قبول ننه کنی تلق که معتزن منه امام ما محسومه ردی سیر ها این چهارا وقت میمونه مسئله اخباری ها مسئله اخباری ها بعضی عبادتشون قطع و یقین و سرورت و از این حداز که همونده مثل لاتوالا در فرطفالای عهدتشون بعضیشون نه ظاهرشینه که نه مجموعی که در کتب معتبر ما موجوده نه بود جده کلن این یک منداری قابل قبولتر چبیه همون است که میگه قبول بین طاعته شوارد بین طاعته این روزه اون قبول میشه یا احتمالش در کارشی احتمال خیلی روزه اون پس ما بر این مسئله بحث حجیت خبر روشن شد رویشه ها و و چرا این بحث اصولا مطرح شد و راهنهایی که احزه سندر برای حجیت خبر انصافاً مشکل کلی داره این یعنی مشکل اساسی ما با اهلسان از اون مبدعشه بعد از اینکه سنت قبول کردن اما از این را این مبدع مقابل که و اون مبدع این است که ما میگیم سنت به خاطر حضمتی که داشته خود خدا متفد بیشه این رو خدا قرار داده با اهلهای بشری نمیشه در پشتن با راه های بشری نمیشه در پشتن ارز کردم. افری کلم آمدن این چون خود و خدا قبول کردم اما دارم تصحیح به صحابه کردن به صحابه مجبور به زن به عربی مجبور تصحیح مثل هست تصحیح به اونجا پس پنابراین اصل مسئله و روح مسئله روشن شد که اینطوره باست.